مصنوی معنوی مولوی برنامه یک داستان آن درویش که آن گیلانی را دعا کرد که خدا تو را به سلامت به خانمان بازرسانده. <موسیقی> گفت یک روز بخاجه گیلی نانپرست نرگدا زنبیلیه چون ستوت زونان بگفت ای مستعان، خوش به خانمان خود بازش رسان گفت اگر آن است خان که دیدم، حق تو را آنجا رساند ای دو هر محدث را خسان دل کنند، حرفش ار عالی بود نازل کنند زونکه قدر مستمع آیت نبا برقد خاجه برد درزی قبا صفت آن اجوز چون که مجلس بی چونین است، نیست از حدیث پست نازل چارانه است واسطان، هین این سخن را از گرو، سوی افسانه عجوزه باز رو. چون مسنگش تو در این ره نیست مرد، تو به نامش اجوزه سال خورد. نه را راس مال و پایه، نه پذیرای قبول مایه، نه دهنده، نه پذیرنده خوشی، نه درو معنی و، نه معنی کشی، نه زبان، نه گوش، نه عقل و بسر، نه حوش و، نه بیهوشی و، نه فکر، نه نیاز و، نه جمال بحر ناز، توب تویش گنده مانند پیاز، نه ره ببریده او نه پای راه نه تبش آن را نه سوز و آه قصه درویش که از آن خانه هرچی میخواست میگفت نیست سائل آمد به خانه خوشک نخواست خواست یا تر نانه؟ گفت صاحب خانه نان اینجا کجاست؟ خیره ای کی این دکان نان باست؟ گفت بار اندک پی هم بیاب گفت آخر نیست دکان قصاب گفت پاره آرده ای کت خدا گفت پنداری که هست این آسیا گفت بار آب ده از مکرآ گفت آخر نیست جو یا مشرعه. هرچی او درخواست از نان تا سبوس چربک می گفت و می کردش فسوس آنگدا در رفت و دامن برکشید ان در آن خانه به حسبت خواست رید. گفت هی هی، گفت تنزن، ای دو تا در این ویرانه خود فارغ کنم. چون در اینجا نیست وجه زیستن، برچون این خانه بباید ریستن. چون نی بازه که گیری تو شکار، دست آموز شکار شهریار نیستی تا با صد نقش بند که به نقشت چشمها روشن کنند هم نی توتی که چون قندت دهند گوش سوی گفت شیرینت نهند هم نهی بلبل که آشقوار زار خوش بنالی در چمن یا لالزار هم نهی هدهد که پیکیها کنی نه چو لک لک که وطن بالا کنی در چه کاری تو و بحر چت خرند تو چه مرغی و تو را با چی خورند زیندکان با مکاسان برترا تا دکان فضل کهالله اشترا کالهی که هیچ خلقش ننگرید از خلاقت آن کریم آن را خرید هیچ قلب پیش او مردود نیست زانکه قصدش از خریدن سود نیست رجو به داستان آن کمپیر چون عروسی خواست رفتن آن خریف، موی ابرو پاک کرد آن مستخیف. پیش رو آینه بگرفت آن عجوز تا بیار آید رخ و رخصار و پوز، چند گلگونه بمالید، از بتر صفره رویش نشد پوشیده تر. عشرهای مصحف از جا میبرید، می به چفسانید بر رو آن پلید. تا که سفره روی او پنهان شود، تا نگین حلقه خوبان شود، عشرها بر روی هر جا می نهاد چون که بر می بست چادر می فتاد باز او آن عشرها را با خدو می به بر اطراف رو باز چادر راست کردی آن نگین عشرها افتادی از رو بر زمین چون بسی می کرد فن وان می فتاد گفت صد لعنت بران ابلیس باد شد مسور آن زمان ابلیس زود گفت ای قهبه قدیده بی ورود من همه عمر این نیاندیشیدهام ناز جستو قهبه، این دیدم تخم نادر در فضیحت کاشتی در جهان تو مصحف نگذاشتی صد بلیسی تو خمیسن در خمیس ترک من گوی ای عجوزه دردبیس چند دزدی عشر از علم کتیب تا شود رویت ملون همچو سیب. چند دزدی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا. رنگ بربسته تو را گلگون نکرد. شاخ بربسته فن ارجون نکرد. عاقبت چون چادر مرگت رسد، از رخت این عشرها اندر فتد چون که آید خیز خیز آن رهیل گم شود زان پس فنون قال و قیل خاموشی آید پیش بیست وای آن که در درون انسیش نیست سیقلی کن یک دو روز سینه را دفتر خودساز آن آینه را که زسای یوسف صاحب قران شد زلیخای عجوز از سر جوان می شود مبدل به خورشید تموز آن مزاج بارد بردل عجوز می شود مبدل به سوز مریمه شاخ لب خشک به نخل ای اجوزه چند کوشی با قضا. نقد جو اکنون رها کن ما مزا. چون رو نیست در خوبی امید. خواه گلگوننه و خواهی مدید. حکایت آن رنجور که طبیب درو امید صحت ندید. آن یکی رنجور شد سوی طبیب گفت نبزم را فرو بین ای لبیب که ز نبز آگه شوی بر حال دل که رگ دست است با دل متصل چون که دل غیب است خواهی زو مثال زو به جو که بادل استش اتصال باد پنهان است از چشم ای امین در غبار و جنبش برگش ببین کز است او وزان یا از شمال جنبش برگت بگوید وصف حال مستی دل را نمیدانی که کو وصف او از نرگس مخمور جو چون ز حق بعیدی وصف ذات بازدانی از رسول و معجزات معجزات و کرامات خفی برزند بر دل پیران صفی که درونشان صد قیامت نقد هست کمترین آن که شود همسایه مست پس جلی سلاح گشت آن نیک کو کوب پهلوی سعیده برد رخت موجزه کن بر جماد زد اثر یا عصا یا بحر یا شق القمر گر اثر بر جان زند بی واسطه متصل گردد پنهان رابطه بر جمادات آن اثرها آریه است آن پی روح خوش متواری است تا از آن جامد اثر گیرد زمیر حب بزا نان بی حیولای خمیر حب بزا مسیحا بی کمی حب بی باغ میوی مریمی برزند از جان کامل معجزات بر زمیر جان طالب چون حیات معجزه بحرست و ناقص مرغ خاک مرغ آبی در وی ایمن از حلاک اجز بخش جان هر نا لیک لیک قدرت بخش جان همدمه چون نیابی این سعادت در زمیر پس ز ظاهر هر دم استدلال گیر که اثرها بر مشاعر ظاهر است بین اثرها از مؤثر مخبر است هست پنهان معنی هر دارویه همچو سحر و صنعت هر جادویی چون نظر در فعل و آثارش کنی گرچه پنهان است اظهارش کنی قوت کان در درونش مزمر است چون با فعل آیات عیون مظهر است چون به آثار این همه پیدا شدد چون نشد پیدا تاثیر اثیر ایزدد نه سببها با اثرها مغز و پوست چون به جملگی آثار اوست دوستگیری چیزها را از اثر پس چرا زاسار بخشی بخبر، از خیال دوستگیری خلق را، چون نگیری شاه غرب و شرق را، این سخن پایان ندارد، ای قباد، هر ما را اندرین پایان مباد، رجو با قصه رنجور بازگرد و قصه رنجور گو با طبیب آگه ستار خو نبز او بگرفت و واقف شد زهال که امید صحت او بد محال گفت هرچت دل بخواهد آن بکن، تا رود از جسمت این رنج کهون. هرچه خواهد خاطر تو وامگیر، تا نگردد صبر و پرهیزت زهیر. صبر و پرهیز این مرض را دان زیان، هرچه خواهد دل در آرش در میان، این چونین رنجور را گفت، ای امو حق تعالی، املو ما شئتمو گفت رو هین خیر بادت جانم، من تماشای لب جو می روم. بر مراد دل همه گشتو براب، تا که صحت را بیابد فتح باب. در لب جو صوفی بن بود دست و رو میشست و پاکی میفزود او قفاش دید چون تخیلی کرد او را آرزوی سیلی بر قفای صوفی حمزه پرست راست میکرد از برای صفع دست کار زورا گر نرانم تا رود آن طبیبم گفت کان علت شوند سیلیش اندر برم در معركه زونکه لا تولق و بی ایدی تهلوکه تهلوکه است این صبر و پرهیز ای فلان خوش بکوبش تن مزن چون دیگران چون زدش سیلی بر آمد یک تراق، گفت صوفی، هی هی، ای قواد آق، خواست صوفی تا دوسه مشتش زند، سبلت و ریشش یکا یک بر کند. خلق رنجور دقو اند و از خدا دیو سیلی بارند، جمله در ایزای بی جرمان حریس، در قفای همدگر جویان نقیس. ای زننده بی گناهان را قفا، در قفای خود نمی بینی جزا، ای هوا را تب خود پنداشته، بر زعیفان صفع را، بر تو خندید آنکه که گفتت این دواست اوست که آدم را بگندم گندم رهنماست. که خورید این دانه ای دو مستعین بهر دارو تا تکونا خالدین اوش لغزانید و او را زد قفا آن قفا واگشت و گشت این را جزا. غوش لغزانید سخت اندر زلق. لیک پشت و دستگیرش بود حق. کوه بود آدم اگر پرمار شد کان تریاق است و به ازرار شد. تو که تریاق نداری ای، از خلاص خود چرایی غره ای؟ آن توکل کو خلیلانه ترا وان کرامت چون کلیمت از کجا تا نبرد تیغت اسماعیل را تا کنی را، قعر نیل را گر سعید از مناره افتید بادشان در جامع افتاد و رهید. چون یقینت نیست آن بخت ای حسن تو چرا بر باد دادی خیشتن زین مناره صد هزاران همچو آد درف تادند و سر, و سر باد داد سرنگون افتادگان را زین منار می نگرتو صد هزار اندر هزار تو رسنبازی بازی نمیدانی یقین شکر پاها گوی و میرو بر زمین پر مساز از کاغذ و از که مپر که در آن سودا بسی رفته است سر گرچه آن صوفی پراتش شد ز خشم، لیک او بر عاقبت انداخت چشم. اول صف بر کسی ماند بکام، کو نگیرد دانه بیند بند دام. حب دو چشم پایان بین راد که نگه دارند تن را از فساد. آن ز پایاندید احمد بود که دید دوزخ را همینجا مو بمو. دید عرش و کرسی و جنات را تا درید او پرده غفلات را. گر همه خواهی سلامت از زرر چشم زوال بند و پایان را نگر تا عدم ها را ببینی جمله هست هست ها را بنگری محسوس پست این ببین باره که هر کش عقل هست روز و شب در جستجوی نیست است. در گدایی طالب جودی که نیست بر دکانها طالب سودی که نیست. در مزاره طالب دخلی که نیست. در مغارس طالب نخلی که نیست. در مدارس طالب علمی که نیست. در سوامع طالب حلمی که نیست. هستها را سوی پس افکندند. نیست ها را طالبند و بندند. زانک کان و مخزن سن خدا نیست غیر نیستی در انجلا. پیش از این رمز به گفتست مزین این و آن را تو یکی بین دو مبین. گفته شد که هر صناعتگر که راست در صناعت جایگاه نیست جوست. جست بنا موضع ناساخته. گشت صقف ها انداخته. جوست سقا کوزه کش آب نیست. وان دروگر خانه کش باب نیست. وقت سید، اندر ادم بود حملشان، از ادم آنگه گریزان جملشان. چون امیدت لاست، زو پرهیز چیست؟ با انیس تم خود استیز چیست؟ چون انیس تم تو آن نیستیست، از نیست این پرهیز چیست؟ گر انیس لا نی ای جان بسر در کمین لا چرایی منتظر. زان که داری جمله دل برکنده ای شست دل در بحر لا افگنده ای. پس گریز از چیست زین بحر مراد که به شستت صد هزاران سعید داد. از چه نام برگ را کردی تو مرگ جادویی بین که نمودت مرگ برگ هر دو چشمت بست سحر صنعتش تا که جان را در چه آمد رغبتش در خیال او ز مکر کردگار جمله صحرا فوق چه است و مار. لاجرم چه را پناهی ساخته است تا که مرگ او را به چه انداخته است. آنچه گفتم از غلطهات، ای عزیز هم برین بشنو دم ادار نیز.